بیست، فرجام انسان خیردمند این کتاب با معرفی تاریخ به عنوان مرحله‌ای در تداوم گذار از فیزیک به شیمی و سپس به زیست شناسی آغاز شد. انسان خردمند تابع همین نیروهای فیزیکی، واکنشهای شیمیایی و فرایندهای انتخاب طبیعی است که بر تمامی حیات حاکمند. شاید انتخاب طبیعی عرصه تاخت و تازه بسیار گسترده‌تری را برای انسان خردمند در مقایسه با سایر موجودات زنده فراهم آورده باشد اما با این وجود این عرصه محدودیت‌های خود را دارد نتیجه این بوده که انسان خردمند علیرغم تمام تلاش‌ها و دستآوردهایش ناتوان از خلاصی از قید محدودیت‌های مقدر زیستی خیش است اما این در آستانه قرن کم دیگر مستاخف ندارد. انسان خردمند در حال عبور از این محدودیت هاست. اکنون شکستن قوانین انتخاب طبیعی آغاز شده و قوانین طراحی هوشمندانه در حال جایگزینی است. نزدیک به چهار میلیارد سال پیش تمام موجودات زنده روی سیاره بر اساس قوانین طبیعی تکامل میافتند و هیچ کدام توسط خالق هوشمند طراحی نشده بود. مثلا زرافه گردن دراز خود را در رقابت با دیگر زرافه های کهن به دست آورد نه به دنبال حواس های یک موجود فوق هوشمند زرافه های اولیه که گردن درازتری داشتند به غذای بیشتری دسترسی داشتند و در نتیجه بیش از زرافه هایی که گردن کوتاهتری داشتند زاد و ولد کردند نه زرافه ها و نه هیچ کس دیگری اعلام نکرد که گردن دراز زرافه ها را قادر به دسترسی به برگ های نوک درختان می کند پس بگذارید گردن ها را دراز کنیم امتیاز نظریه داروین این است که برای توصیف این که زرافه ها چطور گردن درازی پیدا کردند نیازی به فرضیه وجود یک طراح هوشمند نمی دید. میلیاردها سال پیش زمینهای برای یک تراهی هوشمندانه وجود نداشت، زیرا هوشی برای تراهی کردن وجود نداشت. موجودات ذره که تا همین چندی پیش تنها موجودات زنده ساکن زمین بودند، قادر به انجام کارهای بسیار شگفتنگیزی بودند. یک موجود ذره بینی متعلق به یک گونه قادر است رمزهای ژنتیک گونه‌ای کاملا متفاوت را در سلولهایش ترکیب کند. و به این شکل قابلیت جدیدی پیدا کند، مثل مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک ها. هنوز آنجا که می‌دانیم موجودات زر بینی نه آگاهی دارند، نه هدفی برای زندگی و نه توانایی برنامه ریزی برای آینده. موجودات زنده مثل زرافه، دلفین، شامپانزه و ناندرتال در مرحله معینی، توانایی آگاهی و برنامه ریزی برای آینده را یافتند، حتی اگر یک ناندرتال در مورد مرخای چاق و کم تحرک خیال بافی می کرد که بتواند هنگام گرسنگی آنها را شکار کند اما با این وجود قادر به متحقق کردن تخیل خود نبود او ناچار بود پرندههایی را شکار کند که طبیعت برایش انتخاب کرده بود اولین شکاف در رژیم کوهن در حدود ده هزار سال پیش در طی انقلاب کشاورزی ایجاد شد انسان خردمند که در آرزوی مرغ‌های چاق و کمتحرک بود پی برد که اگر زمینه جفتگیری چاق ترین مرغ را با کند ترین خروس فراهم کند، نستهای بعدیشان هم چاق و هم کند خواهند شد. و اگر آن نستهای بعد را با هم بیامیزد می‌تواند نژادی نجادی از پرندگان چاق و کند رو پرورش دهد. این نجاد جوجه که نه توسط خدا بلکه توسط طراحی هوشمندانه انسان به وجود آمده بود تا آن زمان برای طبیعت ناشناخته بود. اما هنوز انسان خردمند در مقایسه با آن خدای قادر متعال از مهارتهای طراحی محدودی برخوردار بود. انسان خردمند می با استفاده از جفتگیری انتخابی، مسیر روند انتخاب طبیعی را که به طور معمول در مورد مرغها حاکم بود دور بزند و به آن شتاب بدهد. اما نمیتوانست ویژگی های کاملا جدیدی را به وجود آورد که در درون جنهای مرغان وحشی وجود نداشتند. رابطه انسان خردمند با مرغها به نوعی شبیه به بسیاری از دیگر روابط همزیستانه ای بود که اغلب به طور خود ای در طبیعت وجود داشتند. انسان خردمند مرغ ها را در معرض فشارهای انتخابی معینی قرار داد که در اثرش مرغ های چاق و کند تکثیر شدند. درست همانطور که زنبورهای های با انتخاب گل های معینی موجب تکثیر گل های رنگا رنگ می شوند. امروز، نظام چهار میلیارد ساله انتخاب طبیعی با چالش کاملا متفاوت روبرو شده. در آزمایشگاه سراسر سر دنیا، دانشمندان در حال مهندسی موجودات زنده هستند. آنها بدون توجه به ویژگی اولیه موجودات زنده با معافیت از هر مجازاتی قوانین انتخاب طبیعی را نقص می کنند. ادواردو کاک یک زیست هنرمند یا بایو آرتیست برزیلی در سال 2000 تصمیم به خلق یک اثر هنری جدید گرفت و آن یک خرگوش سبز با تشعشع فلورسنت بود. کاک با یک آزمایشگاه فرانسوی تماس گرفت و از آنها خواست تا در ازای حق و زحمه خرگوشی نورانی را با دستورالعمل‌هایی که برایشان می‌فرستاد مهندسی کنند. دانشمندان فرانسوی جنین خرگوش سفیدی را گرفتند و در دی ژن یک عروس دریایی فلورسنت سبز کاشتند و بفرمایید. این هم یک خرگوش فلورسنت سبز برای آقای سفارش دهنده. کاک نام خرگوش را آلبا گذاشت. توصیف وجود آلبا به وسیله قوانین انتخاب طبیعی غیر ممکن است، این خرگوش محصول یک طراحی هوشمندانه است. او همچنین پیشگام پدیده های مشابهی شد که بعد از آن سر برا اگر آلبای بلقوه به طور کامل صورت تحقق به خود گیرد و اگر بشر در این فاصله خود را از صفحه روزگار محف نکند، انقلاب علمی ممکن است چیزی بسیار فراتر از یک انقلاب تاریخی صرف شود. و شاید به مهمترین انقلاب زیستی از دوره پیدایش حیات بر کره زمین بدل گردد پس از چهار میلیارد سال از گذشت انتخاب طبیعی البا در تلیعه یک عصر جهانی نوین قرار می گیرد که زندگی در آن تحت فرمان طراحی هوشمندانه خواهد بود اگر چنین شود با نگاه به گذشته احتمالا تمامی تاریخ بشر تا آن زمان به عنوان روند آزمایش و آموزش باز تصویر شود که بازی حیات را زیر و رو کرد. چنین روندی را باید از یک چشمنداز کیهانی میلیاردها ساله و نه یک افق بشری چند هزار ساله درک کرد. زیستشناسان سراسر دنیا در نبردی با جنبش طراحی هوشمندانه گرفتار شده اند که آموزش های تکاملی داروین در مدارس را زیر سؤال می برد و ادعا می کند که پیچیدگی زیستی ثابت می کند که باید خالق وجود داشته باشد که از قبل درباره تمامی این جزیات زیستی فکر کرده۔ درباره گذشته حق با زیست شناسان است اما در خصوص آینده از قضا باید حق با مدعیان طراحی هوشمندانه باشد. در لحظه تحریر این سطور جایگزینی انتخاب طبیعی توسط طراحی هوشمندانه میتواند به هر یک از سه روش زیر رخ دهد. ده یک از طریق زیست مهندسی، دو مهندسی سایبرگ که سایبورگ ها موجوداتی هستند که از ترکیب اجزای زنده و غیر زنده به وجود می آیند و سه، مهندسی حیات غیر زنده. موش ها و آدم ها زیست مهندسی به مفهوم این است که بشر آگاهانه در روند حیات دخالت کند، مثلا از طریق کاشتن ژن با هدف تغییر شکل، قابلیت‌ها، نیازها یا امیال یک موجود زنده به منظور تحقق ایده‌های فرهنگی از پیش شده مثل تجسم هنری ادواردو کاک زیست مهندسی در خود چیز جدیدی نیست انسان طی هزاران سال از آن برای تغییر خود و موجودات زنده دیگر استفاده کرده یک مثال ساده اختسازی است انسانها گاب های نر را شاید تا ده هزار سال عقیم می کردند تا خوی تهاجمی آنها را از بین ببرند و از آنها مثلا برای شوخم زدن استفاده کنند. انسان ها همچنین پسران خود را عقیم می کردند تا با بالا بردن سطح صدای آنها از آنها خانندگان سوپرانو بسازند و نیز خااج برای سلطان ها به وجود بیاورند که محرم حرمهایشان باشند. اما پیشرفت های در درک ما از عملکرد موجودات زنده حتی تا سطح سلول و هسته امکاناتی را فراهم کرده که تا پیش از این غیرقابل قابل تصور می نمود. مثلا امروز می نه تنها مردی را اخته کنیم بلکه همچنین جنسیت او را از طریق جراحی و درمانهای هرمونی تغییر دهیم. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود، در نظر داشته باشید که در سال 1996 انتشار عکس یک موش که محققین در پشتش یک گوش از سلول های قضروف گاف کاشته بودند در روزنامه ها و تلویزیون چه انزجار تعجب و حراسی به دنبال داشت. اکاس در این ماجرا نقشی نداشت. این عکسی غیر دستگاری شده از یک موش واقعی بود که دانشمندان در پشت او سلول های قضروف گاف کاشته بودند. محققین توانستند رشد بافت جدید را کنترل کنند و در این مورد آن را به چیزی دیگر تبدیل کنند مثل یک گوش انسانی. این روند شاید زودی محققین را قادر به تولید گوشهای ساختگی کند که می‌توان بر بدن ها کاشت. مهندسی ژنتیک قادر به کارهایی است از این هم شگفت‌انگیزتر و برای همین است که موجی از مخالفت‌های اخلاقی، سیاسی و ایدئولوژیک به بار آورده. فقط زاهدان یک تا پرست نیستند که با دخالت انسان در کار خدا مخالفند. بسیاری از خدامونکران راسخندیش هم از این فکر محققین در دستگاری در نظام طبیعت آشفته شدند، فعالین حقوق حیوانات از شکننجهای که طی آزمایشات مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه ها و دامپوری ها بر حیوانات تحمیل می شود و در آنها امیال و نیازهایشان نادیده گرفته می شود پرده بر می دارند. فعالین حقوق بشر از این نگرانند که از مهندسی ژنتیک برای ساختن عبرمردی استفاده شود که میخواهد همه انسانها را به بردگی کشاند بعضی چشمنداز های آخر و زمانی از دیکتاتوریهای زیستی به دست می دهند که سربازان نترس و کارگران متی را تکثیر می کنند. احساس غالب این است که موقعیت های بسیار زیادی با سرعتی زیاد به وجود می آیند و همچنین توانایی ما در تغییر جنها بر توانایی ما در استفاده عاقلانه و دوراندیشانه از این مهارت ها پیشی می گیرد. نتیجه اینکه ما در حال حاضر تنها از کسری از قابلیت‌های مهندسی ژنتیک استفاده می‌کنیم. اغلب موجودات زنده‌ای که اکنون مهندسی شده اند، آنهایی هستند که ضعیفترین پشتیبانان سیاسی را داشتند، مثل گیاهان، قارچ‌ها، باکتری‌ها و حشرات. برای مثال، باکتری های ایکلی که در روده انسان زندگی می کنند و هنگامی که از روده خارج می شوند با ایجاد افونت های کشنده، تیر اول روزنامه ها میشون مهندسی ژنتیک شدهاند تا سوخت زیستی تولید کنند. همچنین ایکلی و چند گونه قارچی مهندسی شدهاند تا انسولین تولید کنند و به این صورت هزینه های معالجات دیابت را کم کنند. جنی از یک ماهی مناطق سرسیر گرفته شده تا در درون سیب زمینی نهاده شود تا گیاهان را در مقابل سرماه مقاوم تر کند. مددی از پستانداران هم تحت مهندسی ژنتیک قرار گرفتند. صنایه تولید شیر به دلیل ورم پستان گاو ها نوع بیماری که قدده شیری گاوهای شیرده را مبتلا می کند سالانه متحمل میلیاردها دلار خسارت می شوند. محققین اکنون روی گاف های آزمایش می کنند که مهندسی ژنتیک شدند و شیرشان دارای لایسوستافین است. یک ماده زیست شیمیایی که باکتری های مسبب این بیماری ها را از بین می‌برد. صنعت گوشت خوک که به دلیل نگرانی مصرف کنندگان برای چربی مزر در گوشت خوک دوچار سقوط در فروش شده بود، امیدواری های به دست آورده زیرا اکنون آزمایشاتی برای به وجود آوردن نوعی خوک صورت می‌گیرد که در درون بدنش جنهای یک کرم نهاده می شود. این جنهای جدید باعث می شوند که خوکها، اسیدهای چرب مزر اومگا 6 را به همگروه مفید خود یعنی اومگا 3 تبدیل کنند برای نسل بعدی مهندسی ژنتیک ساخت خوک با چربی خوب همچون یک بازی کودکانه آسان خواهد بود متخصصین ژنتیک نه تنها توانستند عمر متوسط کرم‌ها را شش برابر کنند بلکه همچنین موش‌های نابغه ساختند که حافظه بسیار بهتر و قدرت فراگیری بیشتری دارند. موش وول جونده نیرومند و کوچک شبیه به موش است که اغلب گونه های آن در امور جنسی لا غیدند. اما نوعی وجود دارد که در آن موش های وول نر و ماده روابط یکتا همسری و پایداری را به وجود می آورند. متخصصین ژنتیک ادعا می کنند که ژنهایی را که در موش های وول باعث تمایلات یکتا همسری می شود جدا کردند. اگر اضافه کردن یک ژن می تواند یک موژ ول یا دنجوان را به همسری وفادار بدل کند، پس چندان با این هدف فاصله نداریم که بتوانیم با مهندسی ژنتیک نه تنها قابلیت های فردی جوندگان و انسان ها را تغییر دهیم، بلکه همچنین بتوانیم ساختار اجتماعی آنها را هم دگرگون کنیم. بازگشت نیاندرتال ها اما خواص متخصصین ژنتیک تنها دگرگون کردن تبار موجودات زنده نیست. هدف آنها دوباره زنده کردن موجودات منقرض شده هم هست. و این تنها مثل فیلم پارک ژوراسیک به دایناسورها محدود نخواهد شد. یک گروه از محققین روسی، ژاپنی و کره‌ای اخیراً نقشه ژنوم ماموت‌های باستانی منجمدی را که در سرزمین های یخی سیبری یافتهاند تهیه کردند. آنها اکنون در نظر دارند تا سلول تخمک بارور شده یک فیل امروزی را گرفته و دی ان ای آن را با دی ان ای بازسازی شده یک ماموت عوض کرده و آن را در رحم فیل قرار دهند انتظار آنها این است که حدود 22 ماه بعد بار دیگر پس از پنج هزار سال ماموت جدیدی متولد شود اما چرا به ماموت ها بسنده کنیم پروفسور جورج چرچ از دانشگاه هاروارد اخیراً عنوان کرده که پس از تکمیل پروژه ژنوم ها خواهیم توانست دی‌ان‌ای بازسازی شده ناندرتال را در تخمک یک انسان خردمند قرار دهیم و اولین کودک ناندرتال را بعد از سی هزار سال تولید کنیم. چرچ اعلام کرد که می‌تواند این کار را در ازای مبلغ ناچیز سی میلیون دلار انجام دهد. چندین زن کنون داوطلب شدند تا به عنوان جانشین مادر در این پروژه شرکت کنند. ما چه نیازی به ناندرتال ها داریم؟ گروهی معتقدند اگر می توانستیم های زنده را مطالعه کنیم، قادر می بودیم تا به برخی از سوالات بسیار تکرار شونده در مورد منشأ و ویژگی های منحصر به فرد انسان خردمند پاسخ دهیم. شاید بتوانیم با مقایسه مغز یک ناندرتال و یک انسان خردمند و بررسی تفاوت‌های ساختاری آنها پی ببریم که چه تغییر زیستی باعث ایجاد آگاهی کنونی ما شده. گروهی دیگر از یک زاویه اخلاقی استدلال می‌کنند که اگر انسان خردمند مسئول انقراض ناندرتال‌هاست، پس این یک وظیفه اخلاقی است که آنها را دوباره زنده کنیم. وجود نیاندرتال هایی در اطراف ما می تواند مفید باشد. بسیاری از صاحبان سنایه خوشحال می شوند که به یک ناندرتال حقوق بدهند تا کار سخت دو انسان خردمند را انجام دهد. اما چرا به نیاندرتال ها بسنده کنیم؟ چرا به سر میز تراحی خدا باز نگردیم و یک انسان خردمند بهتر تراحی نکنیم؟ توانایی ها، نیاز و امیال انسان خردمند پایه ای دارد و جنوم های انسان خردمند پیچیده تر از کرم ها و موش ها نیست. جنوم انسان خردمند فقط 14 درصد بزرگتر از جنوم موش است. مهندسی ژنتیک و دیگر اشکال زیست مهندسی ظرف یک دوره نچندان طولانی شاید طی چند دهه دیگر ما را قادر خواهند ساخت تا تغییرات بسیار گسترده تری نه تنها در فیزیولوژی، سیستم دفاعی و طول متوسط و عمر، بلکه همچنین در قابلیت‌های ذهنی و عاطفی خود ایجاد کنیم. اگر مهندسی ژنتیک می‌تواند موش نابغه بیافریند، چرا انسان نابغه خلق نکند؟ اگر بتواند موش‌های ووله یک تا همسر به وجود آورد چرا انسان‌ها را به گونه‌ای تراهی نکند که نسبت به همسرشان وفادار باشند انقلاب شناختی که انسان خردمند را از یک میمون ناچیز به ارباب جهان متحول کرد تغییرات قابل توجهی در فیزیولوژی یا حتی در اندازه و شکل خارجی مغز انسان خردمند ایجاد نکرد و به طور مشخص چیزی بیش از چندین تغییر کوچک در ساختار درونی مغزه او ایجاد نشده شاید تغییرات کوچک دیگری برای ایجاد یک انقلاب شناختی دوم کافی باشد و نوع کاملا جدیدی از آگاهی به وجود آورد و انسان خردمند را به چیز کاملا متفاوتی تبدیل کند ما در واقع هنوز آگاهی لازم برای رسیدن به این هدف را نداریم، اما به نظر می رسد که موانع فنی غیرقابل قابل عبوری وجود نداشته باشد که ما را از خلق عبر انسان باز دارد. موانع اصلی مخالفت اخلاقی و سیاسی هستند که تحقیقات در مورد انسانها را کند کردند. استدلال های اخلاقی هرچقدر هم قانه کننده باشند، دشوار خواهد بود تا بتوانند گام بعدی را برای مدت طولانی متوقف کنند، به خصوص وقتی اموری مثل امکان افزایش نامحدود طول عمر، قلبه بر بیماری های و ارتقاء توانایی های و شناختی در دستور کار باشد. برای مثال چه اتفاقی میافتاد اگر ما علاجی برای بیماری آلزایمر پیدا می‌کردیم؟ که به عنوان یک مزیت جانبی به تواند حافظه آدم‌های سالم را به گونه ای شگفت‌انگیز بهتر کند آیا کسی می‌تواند تحقیقات مربوط به این کار را متوقف کند و وقتی درمان پیدا شد آیا مرجعی قانونی می‌تواند این معالجات را صرفاً محدود به بیماران آلزایمر کند و مانع استفاده افراد سالم از این دستاوردها برای حافظه باشد معلوم نیست که زیست مهندسی واقعا بتواند ناندرتال ها را دوباره زنده کند اما بسیار محتمل است که بتواند پرده های ابهام را در مورد انسان خردمند کنار بزند سرهمبندی کردن ژنها ها لزوما ما را نخواهد کشت اما ممکن است انقدر انسان خردمند را دستکاری کنیم که دیگر انسان خردمند نباشیم زندگی بیونیک فناوری جدید دیگری وجود دارد که می‌تواند قوانین زیستی را تغییر دهد مهندسی سایبورگ سایبورگ ها موجوداتی هستند که اعضای زنده و غیر زنده را با هم در خود دارند مثل انسانی با دستانی مصنوعی یا بیونیک همه ما امروزه به نوعی بیونیک هستیم، زیرا هواس و کارکردهای طبیعی ما با وسایلی مثل عینک، دستگاه تنظیم ضربان قلب مفاصل مصنوعی و حتی کامپیوتر و تلفن سیار تکمیل می شوند که کار مغز را در خصوص ذخیره و پردازش اطلاعات کمتر می کند. ما در آستانه تبدیل شدن به سایبورگهای واقعی هستیم و دارای تجهیزات غیر زندهی هستیم که قابل جدایی از اندام ما نیستند. تجهیزاتی که توانایی ها، امیال و شخصیت و هویت ما را اصلاح می کنند. آجانس پروژه تحقیقی پیشرفته دفاعی که یکی از مراکز تحقیقات نظامی آمریکاست در حال تکامل سایبورگ هایی از حشرات است. نظر بر این است که چیپ های الکترونیکی، ردیاب ها و پردازنده در بدن یک مگس یا سوسک قرار داده شوند که بتوانند توسط یک انسان یا یک اپراتور خودکار از راه دور کنترل شوند و به کسب و انتقال اطلاعات بپردازند. چنین مگسی می روی دیوار ستاد دشمن بنشیند و محرمان ترین مکالماتشان را استراق سم کند و در مورد ترهای دشمن اطلاعات دقیقی به ما بدهد. در سال 2006، مرکز زیردریایی رسمی آمریکا از مقاصد خود برای تکامل سایبورگ‌های روی کوسه ها گزارش داد و اعلام کرد که این سازمان در حال تکامل یک قطعه الکترونیکی برای ماهی هاست تا به کمک آن به تواند از طریق یاخته های عصبی کاشته شده رفتار حیوان میزبان را کنترل کند. محققین امیدوارند بتوانند با بهرهگیری از از قابلیت‌های طبیعی کوسه ها در کشف نیروی مغناطیسی که برتر از ردیاب های ساخته دست انسان هستند، میدان‌های الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط زیردریایی‌ها و مین‌ها در عمق آب‌ها را شناسایی کنند. انسان خردمند هم در حال تبدیل شدن به سایبورگ است. جدیدترین سمعک گاهی شنوایی بیونیک خوانده می شود. این وسیله از گیرندهای تشکیل شده که صدا را از طریق میکروفونی که در قسمت بیرونی گوش نهاده شده دریافت می کند. این وسیله بعد از تصفیه صداها، صداهای انسانی را شناسایی کرده و با تبدیل آنها به علائم الکتریکی مستقیما آنها را به اعصاب شنوایی مرکزی و از آنجا به مغز می فرستد. ریتینا ایمپلانت یک شرکت آلمانی است که توسط دولت حمایت می شود. این شرکت در حال تکامل یک پروتز شبکیه است که شاید بتواند این امکان را برای افراد نابینا فراهم کند تا بخشی از بینایی خود را باز یابند. یک میکروچیپ کوچک در درون چشم بیمار نهاده می شود، فوتوسلهای نوری را که به چشم اصابت می جذب کرده و به انرژی الکتریکی تبدیل می که این سلولهای عصبی سالم در شبکه را تحریک می کند. انگیزش های عصبی این سلول‌ها مغز را تحریک می و در آنجا به بینایی تبدیل می شوند. در حال حاضر این تکنولوژی به بیماران امکان می دهد تا خود را جهتیابی کنند، حروف را تشخیص بدهند و حتی شهرها را باز شناسند. جس سالیوان یک برق کار آمریکایی در سال 2001 در یک حادثه هر دو دستش را تا کتف از دست داد. او امروز با کمک مسیسه توانبخشی شیکاگو از دو دست بیونیک استفاده می کند. کارکرد ویژه دستهای جدید این است که فقط از طریق افکار او هدایت می شوند. علائم عصبیی که از مغز جسم خارج می شوند، توسط میکروکامپیوترهایی به فرمانهای الکتریکی تبدیل می شوند و دستهای او را به حرکت در می آورند. وقتی جسم میخواهد دست خود را بلند کند، همان کاری را می کند که هر انسان دیگری به طور ناخودآگاه انجام می دهد و دست او بالا می رود. این دست ها در مقایسه با دستهای زنده قادر به انجام کارهای بسیار محدودتری هستند اما جس را قادر به انجام کارهای ساده روزمره می‌کنند یک دست بیونیک مشابه اخیراً برای کلودیا میچل کار گذاشته شده او یک سرباز آمریکایی است که دست خود را در یک حادثه موتورسیکلت از دست داده دانشمندان گمان می که ما به زودی خواهیم داشت که نه تنها در جهتی که می خواهیم حرکت می کنند بلکه همچنین قادر خواهند بود تا علائمی را به مغز بازگردانند و به این صورت افرادی که قطع عضو شده اند حتی حس لامسه خود را هم بازیابند در حال حاضر این دست های بیونیک نمی جانشینی برای دستهای زنده باشند اما قابلیت تکامل نامحدودی دارند برای مثال دستهای بیونیک می توانند بسیار قدرتمندتر از دستهای زنده باشند و به سادگی بر یک قهرمان مشتزنی فائق آیند. به علاوه دستهای بیونیک دارای این امتیاز هستند که هر چند سال یک بار تعویض شوند یا از بدن جدا شوند و از راه دور هدایت شوند. دانشمندان دانشگاه دوک در کارولینای شمالی اخیراً این را با یک گونه میمون به نمایش گذاشتند که در مغزش الکترود نهاده شده بود. الکترودها ها علائم مغزی را جمعآوری کرده و آنها را به وسیله خارجی انتقال می دهند میمون ها را به گونه‌ای تمرین دادند تا تنها از طریق فکر خود بر دستها و پاهای جدا از بدن اعمال کنترل کنند یک میمون به نام اورورا آمخته بود تا با فکر خود یک دست جدای بیونیک را کنترل کند همزمان که دست های زنده خود را به حرکت در می آورد. ارورا همچون الهه های هندو اکنون سه دست دارد که میتوانند در اتاقها و یا حتی در شهرهای مختلفی قرار داده شوند. او میتواند در آزمایشگاه خود در کارولینای شمالی باشد و با یک دست پشتش و با دست دیگر سرش را بخاراند و همزمان موزی را در نیویورک بدوزدد. اگرچه توانایی خوردن موز رو بوده شده از آن فاصله در سطح یک یا باقی میماند. یک میمون دیگر به اسم ایدویا هنگامی که با فکر خود یک جفت پای بیونیک را در کیوتوی ژاپن از کارولینای شمالی کنترل می کرد جایزه جهانی مشاهیر در سال 2008 را از آن خود کرد. این پاها بیست برابر خود ایدویا وزن داشتند. سندرم قفل شدگی وضعیتی است که در آن فرد تمام یا تقریباً تمام توانایی حرکتی قسمت‌های مختلف بدنش را از دست می‌دهد اما توانایی‌های ذهنی و شناختی فرد به جای خود باقی است تا کنون کسانی که به این بیماری مبتلا بودند تنها از طریق حرکات ناچیز چشم‌های خود قادر به رابطه با جهان خارج بودند اما بیماران معدودی هم وجود داشتند که الکترودهای جمع‌آوری‌کننده الایم مغزی در مغزشان نهاده شده. تلاش‌های صورت گرفته تا چنین علائمی را نه تنها به حرکات بلکه به کلام تبدیل کنند. اگر آزمایشات به موفقیت برسند، این بیماران می می‌توانند مستقیماً با اطرافیان خود صحبت کنند و ما هم احتمالاً می‌توانیم با استفاده از این تکنولوژی ذهن دیگران را بخوانیم. اما از میان تمام این پروژه ها که در حال تکاملند، انقلابی ترین آنها تلاش برای ساختن رابطه دو طرفه مستقیم میان مغز و کامپیوتر است که به کامپیوترها این امکان را می دهد تا علائم الکتریکی مغز یک انسان را بخوانند و همزمان علائمی را بفرستند که متقابلا مغز بتواند بخواند. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر از چنین رابطهایی برای اتصال مستقیم مغز با اینترنت استفاده شود یا اینکه چندین مغز را مستقیما با هم متصل کنند و به این ترتیب نوعی شبکه اینترنتی مغزی به وجود آورند اگر مغز مستقیما به بانک حافظه جمعی دسترسی داشته باشد چه اتفاقی برای حافظه آگاهی و هویت انسانی خواهد افتاد در چنین شرایطی یک سایبورگ می تواند مثلا خاطرات دیگری را بازیابی کند نه اینکه راجع به آنها بشنود یا زندگی زندگینامه شخصی آنها را بخواند یا راجع به آنها تصوراتی داشته باشد بلکه مستقیما آنها را به یاد آورد گویی که متعلق به خود او هستند اگر ذهنیت به اشتراک گذاشته شود چه اتفاقی برای مفاهیمی چون خود و هویت جنسی می افتد؟ اگر آرزویی نه متعلق به خود شما بلکه متعلق به یک مخزن عمومی آرزو باشد چطور شما می توانید خودتان را بشناسید و یا آرزوهای خودتان را متحقق کنید چنین سایبرگی دیگر نه انسان است و نه حتی موجود زنده چیزی خواهد بود کاملا متفاوت می تواند موجودی اساساً متفاوت باشد که ما حتی نتوانیم پیامدهای فلسفی، روانی یا سیاسی آن را درک کنیم. زندگی دیگر. راه سوم برای تغییر قوانین زندگی مهندسی کامل موجودات غیر زنده است. آشکارترین نمونه آن کامپیوترها و ویروس‌های کامپیوتری هستند که می توانند مستقلاً تکامل یابند. عرصه برنامه نویسی ژنتیک امروزه یکی از جالبترین زمینه های جهان علم کامپیوتر است. این عرصه تلاش می کند تا از روش های تکامل ژنتیک تقلید کند. بسیاری از برنامه نویسان در آرزوی آفریدن برنامه هستند که بتواند کاملا مستقل از آفریننده خود بیاموزد و تکامل یابد. به این ترتیب، برنامه نویس مهمترین منبع حرکت خواهد شد، یعنی اولین کسی که همه چیز را به حرکت درمی آورد، اما مخلوق او آزادانه در جهانی تکامل می که نه خود نویسنده برنامه و نه هیچ کس دیگری نمی تواند پیش بینی کند. یک نمونه اولیه برای چنین برنامه ای در حال حاضر موجود است و به آن نام ویروس کامپیوتری داده شده. وقتی این ویروس در سطح اینترنت منتشر شود، خود را میلیون و میلیون بار تکثیر می کند و در تمام مدت تحت تعقیب برنامه های شکارگر ضد ویروس قرار می گیرد و با ویروس های دیگر برای یافتن جایی در فضای مجازی رقابت می کند. گاهی ممکن است در حین تکثیر شدن این ویروس اشتباهی رخ دهد ده که به آن جهش کامپیوتری می گویند. این جهش شاید به این دلیل صورت می‌گیرد که مهندسی انسانی ویروس را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که در عمل تکثیر خود اشتباهات تصادفی و گاه گاه انجام دهد. شاید هم جهش ناشی از اشتباهات تصادفی باشد. اگر این ویروس بر حسب تصادف تصحیح شود و بدون آنکه توانایی خود در حمله به کامپیوترهای دیگر را از دست بدهد، بهتر بتواند برنامه های ضد ویروس را از کار بیاندازد در سطح فضای سایبری منتشر خواهد شد. در این صورت، ویروس های جهشیافته به بقا و تکثیر خود ادامه خواهند داد. فضای سایبری به مرور زمان پوشیده از ویروس جدیدی خواهد شد که هیچ کس آنها را مهندسی نکرده و تابع تکامل غیر زنده هستند. آیا اینها موجوداتی زنده هستند؟ این به این بستگی دارد که منظور ما از موجودات زنده چه باشد؟ آنها قطعا توسط یک روند جدید تکاملی تولید شده اند و کاملا مستقل از قوانین و محدودیت های تکامل موجودات زنده هستند. احتمال دیگری را تصور کنید فرض کنید که محتوای مغز خود را به روی یک هارد دیسک قابل حمل منتقل کنید و آن را روی کامپیوتر لپتاپ خود بیاورید آیا کامپیوتر شما قادر خواهد بود تا مثل انسان خردمند فکر و احساس کند در این صورت آیا این کامپیوتر خود شما خواهد بود یا کس دیگری چه اتفاقی خواهد افتاد اگر برنامه برنامه‌نویس‌های کامپیوتری بتوانند ذهنی کاملا جدید اما دیجیتال به وجود آورند که بتواند توسط کدهای کامپیوتری جاری شود و به طور کامل دارای احساس شخصی، هوشیاری و حافظه باشد اگر شما بتوانید این برنامه را روی کامپیوتر خود جاری کنید آیا آن برنامه یک شخص خواهد بود اگر شما آن را حذف کنید آیا به عنوان قاتل متهم خواهید شد ما شاید به زودی جواب این سوالات را پیدا کنیم. پروژه مغز انسان که در سال 2005 تأسیس شد امیدوار است تا در درون یک کامپیوتر یک مغز کامل انسانی را بازسازی کند که در آن مدارهای الکترونیکی همچون رشته های عصبی مغزی عمل می کند. مدیر این پروژه ادعا کرده که اگر بودجه کافی در اختیار داشته باشد ظرف یک تا دو دهه خواهند توانست یک مغز مصنوعی انسانی در درون یک کامپیوتر تولید کنند که قادر است بسیار شبیه به انسان حرف بزند و رفتار کند. اگر این پروژه متحقق شود، به این معنا خواهد بود که زندگی پس از چهار میلیارد سال در درون دنیای کوچک ترکیبات زنده، ناگهان به دنیای گسترده غیرزنده خواهد آمد تا به دست نیافتنی ترین آرزوهایمان صورت تحقق بخشد. اما همه محققین این را نمیپذیرند که مغز شبیه به کامپیوترهای دیجیتال امروزی عمل کند و در این صورت کامپیوترهای امروزی نخواهند توانست آن را شبیه سازی کنند. ولی کاملا احمقانه است اگر قاطعانه این امکان را قبل از انجام این تلاش ها مردود بدانیم. این پروژه در سال 2013 یک کمک مالی معادل یک میلیارد یورو از پیمان اروپا دریافت کرد. یگانگی در حال حاضر تنها کسری از این امکانات جدید به تحقق پیوسته اما جهان سال 2014 هماکنون جهانی است که در آن فرهنگ خود را از تنگناهای زیستی آزاد می کند توانایی ما در مهندسی دنیای اطرافمان و فراتر از آن جهان درونی بدن و مغزمان با سرعتی سرسام‌آور در حال گسترش است اسههای هرچه هرچه بیشتری از فعالیت ها ناچارند روشهای متکبرانه و غیر خود را کنار بگذارند حقوقدانان ناگزیرند تا در خصوص مقولاتی چون حریم خصوصی و هویت تجدید نظر کنند حکومت ها باید نسبت به معضلاتی مثل خدمات بهزیستی و برابری بازنگری کنند انجمن های ورزشی و مؤسسات آموزشی ملزمند تا اصول و قوانین بازی و پیروزی منصفانه را باز تعریف کنند. صندوق بازنشستگی و بازار کار باید خود را با دنیای منطبق کنند که در آن 6 ساله کنونی شاید سی ساله جدید فرض شود. همه باید با معضلات پیچیده زیست مهندسی، سابرگ ها و زندگی غیرزنده دست و پنجه نرم کنند. ترسیم اولین نقشه ژنوم انسانی نیاز به 15 سال وقت و سه میلیارد دلار هزینه داشت. امروز می توان به نقشه دی ای فردی ظرف چند هفته با هزینه ای معادل چند چندصد دلار پی برد. اصر پزشکی متناسب با فرد که در آن معالجات پزشکی بر پایه دی ای فرد قرار میگیرد گیرد، اکنون آغاز شده. پزشک خانوادگی میتواند تواند به زودی با قطعیتی نسبتاً بالا به شما بگوید که در معرض خطر بالای سرطان کبد هستید اما در مورد حمله قلبی جای نگرانی نیست. پزشک می تواند تشخیص دهد که فلان داروی مرسوم که به 92 درصد از مردم کمک می کند در مورد شما کارایی ندارد و شما باید به جای آن از داروی دیگری استفاده کنید که مشخصاً برای شما مناسب است اما برای بسیاری از مردم کشنده است. راه رسیدن به معالجه مطلوب در نزدیکی ماست. اما پیشرفت های دانش پزشکی معضلات اخلاقی جدیدی را هم به همراه می آورد. متخصصین اخلاق و قانون همکنون با مسئله قامز حریم خصوصی و رابطه آن با دی ای درگیرند. آیا به شرکت بیمه باید این حق داده شود که به اسکنهای دی ای ما دسترسی داشته باشند و در صورت کشف تمایلات ژنتیک در ما برای رفتار غیرمحتاطانه حق بیمه را افزایش دهند؟ آیا باید به جای فهرست سوابق کاری نقشه دی ای خود را برای کارفرمای احتمالی بفرستیم؟ آیا کارفرما می تواند متقاضی را به دلیل وضعیت دی ای مناسب او مورد التفات بیشتر قرار دهد؟ یا در چنین مواردی می توانیم برای تبعیض ژنتیک اقامه دعوا کنیم؟ آیا شرکتی که موجود یا اندام جدیدی را خلق میکند، میتواند حق امتیاز DNA او را برای خود به ثبت برساند؟ البته میتوان مالک یک جوجه معین بود، اما یا میتوان مالک کل یک گونه زیستی شد؟ چنین دوشواری های در مقایسه با پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و سیاسی پروژه گیلگمش و قابلیت ما در توانایی‌های های جدید برای به وجود آوردن عبر انسان ناچیزند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، برنامه های دولتی برای خدمات درمانی در سراسر جهان، نظام بیمه های درمانی ملی و قوانین اساسی ملل مختلف در سراسر دنیا اعلام می کنند که یک جامعه انسانی باید برای تمام اعضای خود خدمات درمانی مناسب فراهم کند و برای آنها شرایط بهداشتی نسبی قابل قبولی فراهم آورد. تمام اینها تا آنجا اقدامات خوبی به شمار می رفتند که پزشکی تمرکز خود را عمدتا بر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها قرار داده بود. اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر پزشکی هم خود را صرف بالاتر بردن توانایی بشری کند؟ آیا همه انسان مشمول بهره‌گیری از چنین توانایی می‌شوند یا اینها تنها به گروه ممتازان اجتماعی اختصاص خواهد یافت؟ دنیای پسانوین ما بر خود می‌بالد که برای اولین بار در تاریخ حق برابر همه انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد اما شاید در مسیر ایجاد نابرابرترین جوامع باشد طبقات بالای جامعه در تمام طول تاریخ همواره ادعا کردند که باهوشتر، قویتر و عموماً بهتر از طبقات پایینی هستند آنها به طور معمول خود را فریب می‌دادند یک نوزاد متولد شده در یک خانواده روستایی فقیر احتمالاً به اندازه یک شاهزاده باهوش بوده ادعاهای طبقات بالا با کمک قابلیت‌های نوین پزشکی ممکن است به زودی به یک واقعیت عینی بدل شوند این یک داستان علمی تخیلی نیست در اکثر داستان‌های علمی تخیلی دنیایی ترسیم می‌شود که در آن انسان خردمند که مثل خود ماست از تکنولوژی فوقلادهی مثل سفینه فضایی با سرعت نور و سلاح های لیزری برخوردار است. منشأ تردیدهای اخلاقی و سیاسی نسبت به این داستان ریشه در دنیای خود ما دارد و فقط تنشهای اجتماعی و احساسی ما را بر یک پس زمینه آینده نگرانه بازسازی می کند. اما قابلیت واقعی تکنولوژی های آینده تغییر خود انسان خردمند و از جمله امیال و عواطف اوست و تنها به وسیله نقلیه و جنگ افزار محدود نمی شود. یک سفینه فضایی چه جایگاهی در مقایسه با یک سایبورگ دارد که همیشه جوان است، فاقد تمایلات جنسی و امکان تولید مثل است، می تواند مستقیما در افکار دیگران شریک شود، توانایی هایش در تمرکز و به یاد آوردن هزاران بار از خود ما بیشتر است، هرگز نه عصبانی و نه غمگین می شود، اما دارای چنان احساسات و امیالی است که نمیتوانیم تصورش را بکنیم. چنین آیندهای به ندرت در داستان‌های علمی تخیلی ترسیم می‌شود زیرا توصیف دقیق به معنای واقعی کلمه غیرقابل قابل درک خواهد بود تولید فیلمی درباره زندگی یک ابر به این شباهت دارد که بخواهیم نمایشنامه هملت را برای ها اجرا کنیم در حقیقت تفاوت اربابان آینده جهان با ما بیشتر از تفاوت ما با ها خواهد بود ما و ناندرتال حداقل انسان هستیم اما وارثین ما خداگونه خواهند بود. فیزیکدانان بیگ بنگ را یک یگانگی توصیف می کنند مقطعی که هیچ کدام از قوانین شناخته شده طبیعت هنوز وجود نداشتند. زمان هم وجود نداشت. پس بنابراین این بیمنست اگر بگوییم چه چیزی قبل از بیگ بنگ وجود داشت. ما شاید به سرعت به سمت یک یگانگی نوین در عزیمتیم زمانی که تمام مفاهیمی که به دنیای ما معنا می دهد مثل من شما مرد زن عشق و نفرت بی ربط خواهند شد هر آنچه که در ورای آن مقطع رخ دهد برای ما بی معنا خواهد بود رسالت فرانکشتاین در سال 1818 میری شلی فرانکشتاین را منتشر کرد که داستان دانشمندی بود که تلاش می کرد تا موجودی مصنوعی خلق کند که از کنترل خارج می شود و همه چیز را به هم می ریزد. این داستان در قرن اخیر بارها و بارها در تنوعات بیپایانی بازگو شده و به رکن اصلی و علمی جدید بدل شده. در نگرش اول به نظر می رسد داستان فرانکشتاین به ما هشدار می دهد که اگر سعی کنیم نقش خدا را بازی کنیم و به مهندسی حیات بپردازیم شدیداً مجازات خواهیم شد. اما داستان مفهوم امیغ دارد. استوره فرانکشتاین انسان خردمند را با این حقیقت می کند که روزهای پایانی به سرعت نزدیک می شوند. داستان از این قرار است که اگر فجایع هستهی یا زیست محیطی دخالت نکنند، سرعت تحولات تکنولوژیک به زودی منجر به جایگزینی انسان خردمند با موجودی کاملا متفاوت خواهد شد که نه تنها جسم متفاوت بلکه دنیای شناختی و حسی متفاوتی هم دارند. این چیزی است که اغلب انسانهای خردمند را به شدت نگران می کند. ما مایلیم این طور گمان کنیم که در آینده انسان‌هایی درست مثل خود ما با سفینه های فضایی پرسرعت از سیاره‌ای به سیاره دیگر سفر خواهند کرد اما نمی‌خواهیم به این فکر کنیم که موجوداتی با احساسات و هویت‌هایی شبیه ما دیگر وجود نخواهند داشت و اینکه جای ما را اشکال زندگی بیگانه خواهند گرفت که با هایشان بر ما چیره خواهند شد ما به نوعی با این فکر به دنبال آرامش می گردیم که دکتر فرانکشتاین هیولایی وحشتناک آفرید و, و ما ناچاریم آن را از بین ببریم تا خود را نجات دهیم. ما تمایل داریم ماجرا را اینچنین بازگو کنیم زیرا معنایش این است که ما اشرف مخلوقاتیم و بهتر از ما هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. هر تلاشی برای بهتر کردن ما با شکست با خواهد شد زیرا حتی اگر جسم ما بهتر شود روح انسانی ما قابل دستگاری نخواهد بود. هزم این واقعیت برای ما بسیار سخت خواهد بود که دانشمندان بتوانند روح ما را همچون بدنمان مهندسی کنند و دکتر فرانکشتاین‌های آینده بتوانند موجوداتی خلق کنند که واقعا بهتر از ما باشند و به ما با غروری بنگرند که ما به نئاندرتال ها می نگریم. ما نمی توانیم مطمئن باشیم که فرانکشتاین‌های امروزی واقعا به این پیشگویی جامعه عمل بپوشانند آینده نامعلوم است و شگفت‌انگیز خواهد بود اگر پیشگویی‌های این صفحات اخیر به طور کامل تحقق یابند. تاریخ به ما می‌آموزد که چیزی که احتمال وقوع آن محتمل به نظر می‌رسد، شاید به دلیل موانع غیرقابل پیش‌بینی هرگز متحقق نشود و وضعیت‌های غیرقابل تصور دیگری صورت واقعیت به خود گیرند. وقتی عصر اتم در 1940 آغاز شد، پیشبینی های بسیاری درباره جهان هستهی ای آینده در سال 2000 صورت گرفت. وقتی قمر مصنوعی روسی و آپولو 11 تخیلات جهانیان را شولور کرد، همه شروع به پیشبینی کردند که تا پایان قرن انسان در مستعمرات فضایی مریخ و پلوتون جایگیر خواهد شد. معدودی از این پیش بینی ها به تحقق پیوستند. از طرف دیگر، کسی اینترنت را پیش بینی نمی کرد. پس لازم نیست و برای محافظت از خود در مقابل اتهامات موجودات دیجیتال بیمه مسئولیت برای خود بخرید. خیال ها یا کابوس هایی که در بالا به آنها اشاره شد، تنها محرک هایی برای تخیلات ما هستند. را که باید جدی بگیریم، این ایده است که گام بعدی تاریخ نه تنها دگرگونی های تکنولوژیک بلکه همچنین تغییراتی بنیادی در آگاهی و هویت انسانی خواهد بود. و این دگرگونی ها می تا به حدی ریشهی باشند که حتی خود مقوله بشر را زیر سؤال ببرند. چقدر وقت داریم؟ کسی به درستیده می داند. همانطور که پیشتر اشاره شد گروهی از محققین معتقدند که تا سال 2050 اولین انسانهای نامی را به وجود خواهند آمد پیشبینی های معتدلتر از یک دوره 100 ساله یا هزار ساله صحبت می کنند. اما از یک چشمانداز هفتاد هزار ساله تاریخ انسان خردمند چند هزار سال چه اهمیتی خواهد داشت اگر پرده نمایش تاریخ انسان خردمند در حال فرو افتادن است، ما به عنوان آخرین نسلها می بایست وقتی را برای پاسخ دادن به آخرین سوال اختصاص دهیم. چه می خواهیم بشویم؟ این سوال که گاهی به سؤال ائتلاف بشر شناخته شده، بحث هایی را که همکنون سیاستمداران فلاسفه، محققین و مردم عادی را به خود مشغول کرده تحت شعا قرار می دهد. گذشته از اینها، بحثهای جاری، میان ادیان، ایدئولوژی ها، و طبقات همراه با خود انسان خردمند به احتمال زیاد از بین خواهند رفت. اگر اخلاف ما به باقی در مدار دیگری از آگاهی عمل کنند، یا شاید به نوعی از آگاهی برسند که در ورای ادراک ما باشد، جای تردید خواهد بود که مسیحیت یا اسلام برایشان جذابیتی داشته باشد یا اینکه نظام اجتماعیشان کمونیستی باشد یا کاپیتالیستی و یا اینکه جنسیتشان مذکر باشد یا مؤنث. اما بحث های اساسی تاریخ از این رو اهمیت خواهند یافت که حداقل اولین نسل از این خدایان با اندیشه های فرهنگی انسان های طراحشان شکل خواهند گرفت. آیا این اندیشه ها باید در حیطه تفکر کاپیتالیستی به وجود آیند یا اسلامی و یا فمینیستی؟ پاسخ به این سوال آنها را در مسیرهایی کاملا متفاوت قرار خواهد داد. اکثر مردم ترجیح می‌دهند تا به این مسئله فکر نکنند. حتی عرصه زیست اخلاقی ترجیح می‌دهد سؤال دیگری مطرح کند: چه کاری ممنوع است؟ آیا انجام آزمایش‌های ژنتیک روی انسان زنده قابل قبول است؟ یا روی جنین‌های سخت شده؟ یا روی سلول‌های بنیادی؟ آیا تکثیر غیرطبیعی گوسفند یا شامپانزه اخلاقی است؟ تکثیر غیرطبیعی انسان چطور؟ اینها همه سوالات مهمی هستند اما ساده‌لوحانه است اگر تصور کنیم که می توانیم به سادگی ترموس را بکشیم و پروژه های علمی را متوقف کنیم که در حال متحول کردن انسان خردمند به موجود دیگری هستند زیرا این پروژه ها به گونه جدای ناپذیری با پروژه گیلگمش پیوند خوردند از دانشمندان سوال کنید چرا جنوم را بررسی می کنند و یا تلاش می کنند تا بین مغز و کامپیوتر پیوند ایجاد کنند یا سعی می کنند در درون کامپیوتر ذهن ایجاد کنند. از هر ده بار، نه بار همان پاسخ معمول را خواهید چنید. ما این کارها را برای معالجه بیماری ها و نجات زندگی بشر انجام می دهیم. اگرچه پیامدهای ایجاد ذهن در درون کامپیوتر بسیار بیشتر از معالجه بیماری های است با این وجود توجیهاتی معمول هستند، زیرا کسی نمیتواند با آنها مقابله کند. به این دلیل است که پروژه گیلگمش گل سرسبد علم است و خاصیتش توجیه هر است که علم انجام میدهد. دکتر فرانکشتاین بر شانه های گیلگمش سوار است، از آنجا که متوقف کردن گلگمش غیر ممکن است، متوقف کردن دکتر فرانکشتاین هم غیر ممکن می نماید. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که بکوشیم بر جهت حرکت دانشمندان تأثیر بگذاریم. اما از آنجا که به زودی می توانیم امیال خود را هم مهندسی کنیم، شاید سوال واقعی که در برابرمان قرار می گیرد این نباشد که دوست داریم چه چیزی بشنویم. بلکه این است که چه خواسته هایی خواهیم داشت؟ آنهایی که از این سؤال به وحشت نمی احتمالا احتمالاً به اندازه کافی به آن فکر نکردند. کلام آخر، جانوری که خدا شد هفتاد هزار سال پیش، انسان خیردمند هنوز جانور ناچیزی بود که در گوشه ای از آفریقا گذران می کرد. اما در هزاره های بعد او خود را به عنوان ارباب بر مسند سیاره زمین نشاند و کره زیستی را به عرصه وحشت خود بدل کرد او اکنون در آستانه رسیدن به مقام خدایی است و آماده است تا نه تنها به جوانی جاودانی بلکه به توانایی آفرینش و نابودگری برسد متاسفانه حاکمیت انسان خردمند بر زمین تا کنون چندان حاصلی به بار نیاورده تا به اعتبار آن بر خود ببالیم ما محیط اطراف خود را تحت حاکمیت درآوردیم محصولات غذایی را افسایش دادیم شهر ساختیم امپراتوری برپا کردیم و شبکه های تجاری در دور ها تنیدیم اما یا توانستیم از میزان رنج بر روی زمین بکاهیم افزایش دائمی قدرت بشر لزوماً به رفاه آهاد انسان خردمند نیانجامیده و منجر به فلاکتی غیرقابل تصور برای جانداران دیگر شده در دهه اخیر تا آنجا که به وضعیت انسانها برمیگردد ما بالاخره به پیشرفت واقعی دستیافتیم. یافتیم گرسنگی و جنگ را کاهش دادیم اما وضعیت دیگر جانداران بیش از هر زمانی به سرعت روبه بخامت می رود و بهبودی در شرایط زندگی انسان هم به قدری تازه و شکننده است که نمی توان از آن مطمئن بود. علاوه بر این، علا رقم کارهای شگفتنگیزی که بشر قادر به انجام آنها شده در مورد اهداف خود نامطمئنیم و به نظر می آید که مثل همیشه ناخوش انسان از قایق به کشتی بخار و از آن به سفینه های فضایی رسیده اما هیچ کس نمی داند پس از آن به کجا می رود. ما از هر زمان دیگری قدرتمندتریم، اما نمی دانیم با این قدرت چه کنیم. از آن بدتر بشر از هر زمان دیگری غیر متعهد تر شده. خدایان ای هستیم که خود را فقط با قوانین فیزیک همدم می کند و به هیچ پاسخگو نیست. در نتیجه اکنون موجودات دیگر و محیط زیست پیرامونمان را نابود میکنیم و به دنبال چیزی به جز آسایش و شادی خود نیستیم و تازه هرگز هم به رضایت خاطر نمی رسیم. آیا چیزی خطرناکتر از خدایان ناخشنود و عاری از حس مسئولیت که نمیدانند چه میخواهند وجود دارد